سی و هفته آقا علا محمدین و آلده صاحبین خدمتتون عرض کردیم که اگر دو فعه یا دو عامل به طور مطنق بر سر معمولی نظار کنن دو عامل بر سر معمولی نظار کنن شرطشممینه اون معمول اسم ظاهر باشه و موخر هم باشه بعد از اون تا عامل باشه بصریگین قائل بودند عمل رو ما به دومی یدیم و دلایلی داشتن یکی اینکه دومی نزدیکتر است به معمول دیگه اینکه اگر ما دومی رو عمل بدیم بین عامل و معمول فصل به اجنبی و سوم این که عطف و جمله قبل از تمام شدنش نیست یعنی <تصفيق> اگر ما بیایم دومی دو رو عمل بدیم این نیستش که به جمله اول عطف کرده باشیم قبل از تمام شدن بل اگر اولی رو عمل بدیم چون اسم آخری معمول اولیست به جمله اول عطف کردیم قبل از تمام شدنش بعد آقایون کوفیگین اومدن خایل شدند که ما اولی را عمل بدیم. چون اون اول احتیاج خودش رو به یا به معمول اعلام کردیم لصب تا موقعی که سابق هست نوبت به لاحق نمیرستیم اون زودتر اومده حق باید دلیل دلیل دوم گفتن اگر ما دوبوری رو عمل بدیم در صورتی که فایل میخواد مجبوریم که چکار کنیم برای اولی زمیر بیاریم و زمیر آوردن مستلزم عد زمیر به مرجع مترخیل لفظی و میشه و این اعود زمیر به مرجع مترخیل لفظی و درست نیست درست پس بنابراین ما برای فاطر اینکه اعود زمیر به مرجع متخر نکنیم میگیم عملو بدید به؟ آه. که اگر برای دوبومین هم زمیر آوردید مشکلی ایجاد نمیکنه چرا؟ به دلیل اینکه اون زمیر درسته به اسم معخر برمیگرده ولی اون اسم معخر در رتبه جمله جمعه محدودون علیه و مقدم است در رتبه و در محدش خب علایهان هر دو دلائلی داشتن و هم خوب کوفی این گفتن اف نداره عاد زمیر به مرجع متاخل لفظی رتبهی بیشه ما میگیم ایتا است؟ چون مجبور این درستش باییم میگیم ایتا است؟ بسری حالا نظر ما اینه که شما اینجا تو باب تناظر میتونید هم اولین عمل دادید هم دوکومی حتی بعد نظری عمل کنید عربی و هر دوتاشون هم معید از کلام عرب دارد کلام عرب هم بر عمل دادن به دوکومی اومده گای اوقات بر عمل دادن به عمل به قول بسیلی بهتر که شیخ هم اول اونو نه بکرد بعد قول کسیلی حالا از اینجا به بعد احکامشون شروع میشه دقیقا به میگه ایه ما و ایه هما اعملتر و ایه هما از مر تلفائه رفل محمد اولا ببینید اونی که عمل میگید از دو تا عامل بهش میگن محمد عامل محمد اونی که عمل نمی کنه در اسم ظاهر و قافل میمونه بهش میگن چی؟ محمد یعنی در مثلا ضرب تو و اهند تو زریدن اگر ضرب تو رو عمل دادیم به از ضرب تو میگن چی؟ محمد اونی که عمل نکرد در اسم زایر جاموند بهش میگن چی؟ محمد میگه ببینی یا اینه که عامل ما فائل میخواد یا غیر فائل میخواد آمل یا فائل میخواد یا غیر فاعل ایه ما اعمنته هر کدوم از این اولی یا دومی رو عمل بدی فرقی نمیکنه از مر تالفالا اگر اون دومی فاعل میخواد حتما باید براش چیه ضمیر بود درست شد از مر تالفالا ضمیر میاری فائل رو فرم محمد موافقا لظاهر چون این زمینی که میاری به میگرده به کی و همون اسمه ظاهر دیگه میگه باید موافق با اون هم باشه چون مرجع زمیر اونه خب زمینشان هم مطابق بیاره درست شد؟ حالا مثال بزنیم الان میگاه کنید زرب تو و شتم تو هندن زرب تو و شتم تو هندن الان کدوم عمل بدیم؟ نه اون زرب تو و شتمت میگه اون بکنیم شتمت میگه درست شد؟ حالا کدوم عمل بدیم مثلا شتمتی درستو من الان تا دادم دیگه بهش درسته شتمطنی اون هندن کنید منصور <تصفيق> کدوم عمل کرده شتمطنی یا ضرب تو دیگه تو دیگه هندن نمیشود ضرب هندن مفعول برداشت شتمطنی چی میخواسته؟ فاعل میخواسته فاعلیش چی داره؟ زمیر اومده و زمیر درش مستطر شده بزرد تا های شده شتمت شخص عمل دادیم به اولی طبق نظر کوفیگی و برای دومی زمیر آوردیم چرا چون زمیر فاعلی رو لازم داره نمیشه فائل رو ازگرده و زمیر هیا آوردیم داخل شتمت مستطر شد شد شتمت الان میگید ضرب تو فعل و فائل زیدن آخر عبارت چی؟ مفهوله وابا وابا وا, آتفه شتمتمی، فعل و فاعل و مفهول اگه گفتم فاعلش گورد میگیم داخلش مستطره زمیره داخلش مستطره به کی بر میگرده به هند؟ مطابقه حالا اگر تو همینجا هندان بشه هندین هندان بشه چی؟ هندین شما موقع چی میگیم؟ شتمتا اینه حالا اگر بشه هندات چی میگین؟ شتم شتم نه نی. شتم نه نون اول فائله نون دوقان بقایه است شتم نه نی میشه ضرب تو و شتم نه هندات الهنداته هندات چون جمعه کسی هست با حالتو چی جامعه حده خوده نصبش به چی؟ درست شد؟ این هنال تبقیه اینکه ما کنومو عمل دادیم؟ بگی. اولی رو حالا یه مثال هم بزنیم تبقیه قولو بسیم اینکه ما می ای عمل کردیم درست شد؟ شتم تو زیدن رو نصب کرد. ضربنی فاقیلش کیه؟ یه حقایه؟ حالا اگر اون زیدن بشه زیدن چی میشه؟ میشه زربانی و شتم تو از زیدن. بشه زیدون آه؟ میشه زربونی و شتم تو از زیدی علایه حال نتیجه که میگیریم چیه؟ این که شما اگر فعلت چی بخواد؟ باید اون فعلی که فاعل میخواد فعل محمل باشه یعنی فعلی که در اصل ظاهر عمل نکرده چه اولی رو عمل بدی چه دومی رو عمل بدی فرقی نمیکنه باید در اون فعلی که عمل نکرده و فاعل میخواد ضمیر بیاری و این زمین رو هم مطابق با مرجعش یعنی اسم ظاهر مطابق با مرجع یعنی اسم چی گفتیم گفتیم دو فعل داریم یکی معمل یکی محمل محمل ما اگر فایل بخواد ما باید چه بکنیم ضمیر و این زمین رو هم مطابق با اسم ظاهر می چرا چون اسم ظاهر مرجعش فعلا فرقی نمی کنه اولی لو عمل بدیم یا بگیم در هر دو صورتش ما زمین رو باید و ما اعملت از منتال فائل فعل مهمن موافقا لذا در تمام شد امن ام مفعول حالا دقت کنیم این مال جایی بود که فعل مهمن چی میخواست فائل گفتیم حتما باز زمین مید حالا چه اولی چه اما اگر مفعول میخواست عمل مفعول حالا نگاه تو یه زرد تو و شتم تو زیدن زرد تو و شتم تو زیدن حالا اگر اینجا اولی را عمل بدیم سفر. در موقع مفهود اولی رو عمل بدیم برای دومی باید زمیر بیاریم میشه چی موقع مثاله بود؟ تو و شتم تو هو زیدن اگر اولی رو عمل دادیم اول کوتیگی. باید برای دومی چی بیاریم؟ زمینویه زرب تو و شتم توهو زیدن و عود زمین به مجای متأخر لفتی رتبهی نیست چرا چون درسته که زید مؤخره ولی در لحظ معخره در رتبه چیه؟ اما اگر همین مثال دومی را عمل دادیم در همین مثال چه کردیم؟ دومی را عمل دادیم برا اولی دیگه زمیر بگید نمیاریم حذف میکنیم میگیم زرب تو و شتم تو زیدن اگه خبتن زرب تو کو کن میگیم مفهولش رو چی کردیم هرزت کردیم چرا؟ چون اگر بیاریم و بگیم زرب تو و شتم تو زیدن چی میشه؟ اود ضمیر به مخرج متأخر لفظی و نحوی عود زمیر به مخرج متأخر لفظی و ربعی در صورت فاعل رو ما پذیرفتیم چون نمی‌شد فاعل حسب کنیم درسته فاعل هست چون شرطی کلام بوده میشد حسبش اونجا گفتیم مبنای داره عود ضمیر به مخرج متأخر میپذیریم اگر چه در فاعل اما در اینجا چون مفعول رو میشه حسب کنیم دیگه ما این کار فرام رو چه عهد زمیر به مرژه مترخیل لبس و رتبه انجام چرا؟ چه عهد زمیر به مرژه مترخیل لبسن و رتبتن مفعول اینقدر ازش نداره که ما این کارو رو براش در که میتونیم حسب چون حسب مفعول چی گفتیم؟ گفتیم اگر فعل محمل ما نیاز به مفعول داشت اگر اولی عمل کرده بود و اون فعل محمل دوبومی بود براش چی میاریم؟ زمیر میاریم چرا چون قدر زمیر به مرجع متأخر نمیشه و حذفش هم اگر بیخودی حذف بکنیم غلطه حذف میمی کنیم پس قرار بحثیم باشه. ممنوعیتی نداره زمیر رو برای دومی اگر دومی رو عمل دادیم طبق قول بسی دیگه برای اولی زمیر نمیاریم عوض زمیر به مرژه متحق لفظی رو خواهد شد در مفهول و مفهول اینقدر ازش مفهولی که میشه حسبش بکنیم چرا که براش اینقدر زحمت بکشی عوض زمیر به مرژه متحق لفظی رو این کار رو خلاس شد حالا ببینیم عمل مفهولو مفهول اما مفهول فالمهملو مهملو. کسونی که عمل نکرده امکان ال اگر اولی باشه یعنی فعل مهمل ما اولی باشه که اول نکرده مقبول چی میشه؟ بوظفت حرص میشه مثلا چی چیزی زدیم؟ ذرب تو و شتم تو زیدن ذرب تو و شتم تو زیدن از ذرب تو ما روش چیکار کردیم؟ حرص. به چه دلیل؟ بدهن که اگه می‌آوردیم مورد زمیر به مدخل لفت که رتو می‌دهن مفئول می‌شد و مفئول اینقدر ازه؟ او سالیه اطفایت به جای اول یعنی مهمن اگر دومی باشه عوض می‌ره چی میشه؟ مفئوله به شکل زمیر آورده میشه عوض بره زمیر آورده چرا؟ به دلیل اینکه اولا هست خلاف اصله؟ و ثانی هم عود زمین به مجمع متعقل دفتی رو هم نمیشه هیچ محضوریتی نیست چرا حذفش کنیم میگیم تو و شتم توهو چی چی؟ تو و شتم توهو خب تا اینجا باب تنازل چه شد؟ تمام شد باب تنازل این شد که اگر فعل محمد فاعل میخواد در هر شرایطی که باشه چیکارش میکنیم؟ میاریم و اگر مفعول بخواد اگر فعل اولی مفعول میخواد برایش زمیر نمیاریم اون به زمیر میشه اگر فعل دوبم میخواد برایش زمیر میاریم چرا چون هیچ کنه مشکلی نداره. تا اینجا احکام باب تناظر تمام شد اولا تو پروگری زیاد داره اینقدر نیست اینقدرش باید حداقل اقل این دیگه لب به مطلبه پایه باب تنازوی اینقدر اگه بلد نباشیم تو یاد ر یعنی باید اساس لاقل تو ذهن باشه تا بقیه ی خود به چیه؟ امسان کل اونچه که گفتیم هم تو دوتا کلمه شد اگر فعن محمد بخواهد چکار میکنی؟ زمیر میکنی. چه اولی چه دو. اگر فعن مهمل مفعول بخواهد در صورتی که اولی باشه بگی نمیاری؟ در صورتی که دومی باشه؟ میاری کل اونچه که گفتیم همه چی الا الا ان يمنع ما اون، الا ان اون. مگر جایی که مانع وجود داره مانع هست و مانع باعث میشه که ما نتونیم حظ کنیم مانع وجود داره و مانع جلوی حذف کردن ما رو چیه مثل چی مثل این مثالی که میزنه و لایس من هو، و لایس منه یعنی نیست از باب تنازو نه هو، نه اسم لایس است. میگه این مثال دیگه از باب تنازو نیست. از باب تنازو به امثال نیامد. من هو. نگاه کنید مثال رو. حس بانی و حس بتوهما منطلقاین. از زیدانه منتلقا کما قالو بعض الملهمین کما قاله بعض الملل الان دقت کنید حسبنی چی لازم داره حسبنی فعل هست حسب و نون بقایه یا و یا مفعول afterwards حسبتو ما چی فعل هست فاعل هست مفعول عوج از زیدان منطلقا منطلبا از زیدان منتلغن منتلغن. این هاشیه حاشیه دو کتاب رو روشد. اون حاشیه درشت رو نگاه کنید نوشته الا عن يمن عمان عن من الاسماء دیدید نه؟ مگر اینکه که مانعی از برای زمیر آوردن برای دومی چیه؟ باید برای دومی زمیر بیاریم تو مفهولی مگر اینکه که مانعی از زمیر آوردن هست کماه و ول قولون مختار و من الحضب از حذف کردن هم مانعی هست نمیتونیم هم حضبش کنیم کماه و غیر قولی که غیر مختار مورد اخیاریشون نیست این دوتا رو میزنیم کما رو کنار ف و تازه و تو در اینجا مفقوده اسم ظاهر چرا؟ چرا مفقود اسم ظاهر میاریم امتنع اگر زمیرا آوردن ممتنه ول حضف و حذفو و حذف کردن ممتنع، لا سبيله إلا عن. نیست که شما اسم ظاهر مثال، نه بو حسب تو ما منطلقین از زیدان منطلق هی hey, در جایی که خوب میباکنی اعمل حسبنی حسبنی عمل داده شده فجوه ده از زیدان فائلنده پس فائل حسبنی کیه بگی زیدان درست شد و منطلقن مفعولهو مفعولا لب و منطلقا چی قرار دادن برای او مفعول و ازمه المفعول الاول حسب تو هما. و مفعول اول در حسب تو چی شده؟ زمی را برده شده هما و ازمه را المفعول و مفعول سانی چی آورده شده؟ اسم ظاهر هو و هوا منطلقه لیمانه و هوا انهو کشت حالا دقت کنیم توی این مثال این مثال رو تو باب تنازع میزنم برای اینکه شما بتونید اون چی که خوندید رو تکرار کنید حالا عین مثال رو توی صفحه کتاب بنویسید توی صفحه برن جای در جای مناسب بنویسید تا اینکه من تنازع صحیح و تنازع غیر صحیح رو تو این بهتون نشون بدم بنویسید خب حسب بنی و حسب توما از دیدان تا همینجوری حسب بنی و حسب تو از زیدان اول حسبنی و حسب تو و حسب تو از زیدان هر دو نزاع کردن بہنیستید حسبنی و حسب تو زیدان حالا با مفعولینش فعلا کاری بگید نداریم با مفقولها کار <تصفيق> ضادیم حسبانی چی داره؟ فعیل داره و مفقول اول یا حسب چی داره؟ فعیل داره و فائل. نیازه به چی داره؟ مفعول نیازه به؟ مفعول داره سر زیدان نزا کردن حسبانی میگه بده به من بکنم ایش پایل حسبتو میگه بده به من مفعول قدر درسته؟ عمله به کدوم آده به حسبانی دادیم درسته؟ شده زیدان به بعد برای دومی مجبور شدیم چی بیاریم؟ زمیر بیاریم چه زمیری آوردیم؟ هما هما آوردیم و شده بنی و حسبتو ما از زیدان اینجا الان تنازو صحیحه یعنی تنازو یکی صحیح بوده یکیش در اسم ظاهر عمل کرده و یکیش در زمیر و چون زمیر برای مفعول دوم بوده اسم زمیر هم ظاهر شده هست درست بعد منطلقین رو و منطلقا رو منطلقینش رو میگذاریم کنار. منطلقن حسبنی الان منطلقین رو گذاشتیم چی؟ کنار؟ بعد اومدن سر این دوتا الان این دوتا جمله حسبنی از زیدان حسبتو همه هر دو چی دارن؟ هر دو فعل دارن فاعل دارن و مفعول اول درسته؟ مفعول اول حالا هر دو اومدن سر منطلقا نزا کنن بوش اومدن هر دو سر منطلقا چی کار کنن نزا هر دو سر منطلقن میخوان نزا حسبنی میگه من میخوام قرارش بدم چیه مفعول دوم توما هم, هم میگه من میخوام قرارش بدم مفعول دوم منطلقا رو بیدیم به اولی منطلقا رو بیدیم به اولی یعنی به حسبنی حسبنی کامل میشه درست یا نیست؟ میشه فرح حسبان زیدان قائلش یا مفعول اول و منطلقا چی چی؟ مفعول سانیش. که سرش نزا کرده بود هفت دادیم. حالا برای دومین تقریق قانون باب تنازه باید چی بیاریم؟ باید زمیر بیاریم درست؟ اگر زمیر بیاریم تقریق قانونی که خوندیم مبافقاً به ظاهر زمیر رو باید مطابق چی بیاریم؟ اسم ظاهر حالا اگر زمیر رو مطابق اسم ظاهر بیاریم باید چی بیاریم؟ ایاهو بیاریم میگه نه؟ نید؟ ایاهو یعنی جای چه کنچه ه و اگر زمیر یاهو بذاریم کلام غلطه. اگر گفتی چرا؟ چون مفعول اینه حسب تو در اصل مبتدا خبر بودن. اگر میشه مبتداش که هماس تسلیه باشه خبرش چی باشه؟ اینجا زمیر درسته با مرجع خودش مطابقت میکنه که منطلقا اما با صاحب خودش که مبتدا بوده و اول بوده مطابق نیست. چون مفرد اول اصف تو تصمیه هست مفرد سانیش چیه؟ مفرد. مطابق حالا ممکنه بگید تصمیه بیارید اگه تصمیه بیارید و بگید ایا هما زمین تا ایا هما درسته با هما مطابقت میکنه که مفرد اول اصف دو اما با مرجع خودش مطابقت بگیر یعنی مفرد بیارید مطابق مرجعش میشه مطابق مخبول اول نمیشه تصمیه بیارید مطابق محول اول میشه مطابق مرجعش. اونجا نمیشه زمیرت بیاری نه مفرد نه تصمیه و قابل قابل هم بگید نیست چرا چونم خوندید که مطبول اینه باب افعال غلوب قابل هست بگید نیست یکیشون خوندیم یا نخوندیم که افعال غلوب رو نمیشه کرد. حالا شما بگید آقا برای دومی که دیگه چیکار؟ باید مفعول بیاریم؟ میگیم ذمیر بیاریم، میگیم خب بله. نمیشه ازب بکنیم. اولا از مفعول اگه دومی مفعول بخواد به طور مطلق از نمیتونیم اینجا به خاطر این بالاتر چون مفعول افعال و حروفم هست دیگه قاعدتاً نباید هست. خب چیکار کنیم؟ نمیتونیم مفرد بیاریم، نمیتونیم میتونیم اسم ظاهر بیاریم. مجبوریم چه بکنیم؟ بگید مجبوریم چی بیاریم؟ اسم ظاهر بیاریم لذا اسم ظاهری که آوردیم چیه؟ منطل غنج. منطل شد؟ حالا همین عبارت رو بنویسیم حسب انیم. و حسب تو حسب انیم. و حسب تو هما از زیدان منطلقه تنازه صحیح در کدوم جمله با... کدوم عبارت باره شد؟ سر زیدان که عمل دادیم به حسبنی و برای حسب تو مجبور شدیم مفهولش رو به شکل زمین و چه کنیم؟ زر کنیم تنازه غیر سهیل کجا بود؟ موقعی که حسبنی و حسب تو سر منطلقه نزا کردند. که ما بناچار برای دومی باید زمیر می آوردیم چون منطلقا رو مفعول حسبنی قرار بدیم و برای دومی وقتی می خواستیم بیاریم اگه مفرد می آوردیم با مرجعش مطابقت می کنه اما با مفعول اول که حسب تو هما هما باشه مطابق نبود اگر تصمیه می آوردیم با مفعول اول مطابق بود اما با چی؟ با مرجعش مطابق نبود الزاب ما به اجبار چه کردیم مجبور شدیم اسم ظاهر بیاریم و اون اسم ظاهر کودون بون اسم ظاهر بود. و وقتی باکنیم. و وقتی اسم ظاهر آوردید دیگه از باب تنازو نیست چرا دیگه از باب تنازو نیست به دلیل اینکه شرط باب تنازو اینه که یکیشون در اسم ظاهر عمل کنه یکشون در زمیر آه، یکیشون در اسم ظاهر عمل کنه و یکشون در زمین. شرط باب تنازع اینه که چون در زمین عمل کشیده در استظهار. اینجا هر دو در چی عمل در اسم ظاهر. لذا میگه این من هو این از باب تنازع نیست چون مانع هست. مانع است از آوردن زمین. لیسمن هو کما قال بعضو محققین همونطور که بعضو محققین هست این مطلب رو کما قال بعضو بافته. ای که اینجا هست دقت کنید. من میخوام بگم اصلا این از اولش باب تنازو نیست یعنی ما همه اینا میگم این از اول باب تنازع نبوده چرا؟ چون ببینید باب تنازع این هست شما میگید که حسبنی و تو ها سر چی نزا کردن؟ سر منطلقن حسبنی نزا کنه سر منطلقن چیه؟ درسته اما حسب تو غلط میکنه بیاد سر منطلقن نزا کنه بچه دلید؟ دردش نمیکنه اصلا بگیم بیا حسب تو مال تو ها اصلا بیا چرا بهش ذمیر بدین چرا خود اسم ظاهر بدیم منطلقن میتونه عمل کنه؟ نه تنازو بیمعناست اینجا شما آمدید فرض گرفتید که بنی و حسب تو سر منطلقن چه کردن؟ نزا کردن و ما عمل رو داریم به اولی حسبنی برای دوباره میخوای و کجا نذار کردن این اصلا دومی دو نمیخواد مطلقاً رو به دردش نمیخوره. آن نزار آدم سر چیزی میکنه که بدون اگر به دست دردش ازش انتفاع و بهره ببره ما میگه اصلا نمیخواد عملو بدید به دومی. دو یعنی میشه اصلا نذای از اول در کار نبوده نه اینکه نذاح شده و ما مجبور شدیم اسم مثل ظاهر مثلا تنازوی در کار بگیر. میمونه من بگم اکل تو و زرب تو زیدن الان گاه یه مثال حالا آمیانه بزنیم تو و زرب تو شما نمیتونید بگید اینجا اکل تو و زرب تو نزا کردن بر سر چی؟ زیدن مثل زرب تو و شطن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقا معنا نداره شما آن اینجا از معنا غلطه بگید که اکل تو زیدن و زرب تو زیدن نمیشه که غلطه مفعول حکل تو به قرینه از شده یعنی حکل تو تعامن و ضرب تو ضایدن قضایی قردم و ضایدو شرط باب تنازو اسمش باب چی چیه تنازو یعنی بین اسمه یعنی تا جماعت ما هم دارن شرط باب تنازو اینه که هر دو دعوا دوا کنن یه چیز اینجا اصلا حسبنی مدعیه که منطلقا به درد من میخوره چون مقبوله اولش یاست مفرده اما ما اصلا به دردش نمیخوره بی خود به کنه مثل تنازوی در کار بگی از اول نبوده و تنازوی نیست حالا دنباله حاشیه رو کنید و هو انلهو لو از میره مفردن اگر به فعال مفرد بیار خال فل مرجعات خال افل. اگر مفرد بیاریم لخال فل مرجع با مرجعش مطابقت نمیکنه. مفرد بیاریم با مرجعش مطابقت نمی. کنه. و هواگویی همون دلگا خ. داریم شو این دنبالش دیگه زاین بدانیم. بسیمیمش مشکل پیدا میکنیم. پس بنابراین این عبارت رو تکرار میکنم و بیرون دیگه شک. ما اصل عبارتی که نوشتیم این بود حسبنی و حسبتو ما از زیدان اول نوشتیم از نوشتیم حسبنی و حسبتو از زیدان تکرار دارم بکنم که راحت بتونید جمع و جوز بگیرید حسبنی و حسبتو از زیدان اینجا تناظر صحیحه حسبنی و حسبتو سر زیدان چه کردن نساخ کردن عملو به کدوم دادیم دادیم به حسبنی بعد برای حسب تو چه کردیم؟ زمین آوردیم. سعی هم این این تنازو تنازوی تنازو تنازو که چیه؟ سعی بعد از اینکه این, این تنازوی صحیح صورت گرفت منطلقا از عبارت کنیم عبارت رو باز بینیسیم میشه حسبنی و حسب تو از زیدان منطلقا حالا فرض اینه که حسبنی فعل دارد مفغول افرم یا داره؟ فایل هم داره زیدان حسب تو هما فعل و فایل و هر دو فعل چی میخوان؟ مفغول سانی میگه هر دو تا سر منطلقا چیکار کردن؟ نتا کردن عمل رو به کدوم دادیم؟ عمل دادیم میگه به اولی حسبنی منطلقن رفته با یا مطابقم هست هر دو مطلقن شده حسبنی منطلقا تمام بعد برای دومی طبق قانون باید چی بیاریم چون دومی هسته باید مفعول بیاریم نمیتونیم چون کنیم ضمير باید بیاریم نمیتونیم و ثانیاً چون افعال قلوبم از اصلا قابل هست نیست خب حالا برای دومی میخوایم زمیر بیاریم چه جور بیاریم طبق قانون باب ثناوزو باید ضمیر چی بیاریم مفرد بیاریم که با مرجع مطابقت کنیم موافق اسم زاهدش. اگر زمین رو مفرد آوردیم گفتیم هو مطابق منطلقاً میشه اما نمیتونه خبر و مفعول ثانی برای حسب تو هما چرا چون حسب تو هما هما مفعول افرد درست؟ من مفرد خب منت به همین دلیل که هر دو در اسم ظاهر عمل کردن دیگه از باب تنازع نیست گفتیم ما به این دلیل نمیدیم میگیم اصلش اولش اصلا تنازو توش چی بوده؟ به چه دلیل؟ بده اینکه حسبنی نیازه به منطلقن داشته به عنوان مفهول سانی. چون مفهول اولش مفرده. اما حسب توه ما به هیچ وجه منطلقن رو به نیازی بهش نداشته بخصا تنازوی در کار نبوده و تناظر جاییه که اگر ما خواستیم اسم ظاهر بدیم بتونه بگیره ما حسب توه ما رو اگه رو بهش بدیم قابل گرفتن پس در این مثال ما چی داشتیم؟ یک تناظوی صحیح داشتیم در محبوب ثانی زمین آوردیم و یک تناظوی غیر صحیح داشتیم که در محبوب ثانی مجبور شدیم چی بیاریم؟ اسم ظاهر بیاریم مثالها رو دقت کنیم هرچیش که جامون انشاءالله فردا یکی کشتاری جا سوال کنیم بعد؟